شامس بغداد 24 ربی الاول 641 خبرهایی هست زمستان گذشته همین که پیکیرا که از دمشق آمده بود دیدیم همگی مشکوک شدیم در آن وقت سال که برف سنگین همه راه‌ها را می‌بندد آدم غریبی این طرف ها پیدایش نمیشود اگر پیکی بی توجه به برف و کولاک نامهی بیاورد، دو احتمال وجود دارد. یا واقعه مهمی اتفاق افتاده، یا قرار است واقعه مهمی اتفاق بیفتد. پس از رفتن پیک، هر کسی در خانقا در محتوای نامه حدسهایی می همه درویش پیر و جوان، سخت کنجکاف بودند بدانند چه خبری برای بابا زمان آوردند اما مرشد به هیچ کس کوچکترین سرنخی نداد مثل دری بسته و پوشیده بود همان قدر هم اسرارامیست مدام در فکر بود سکونی خاص آدمهایی که نمی توانند تصمیم مهمی بگیرند و با وجدان خود درگیرند بر چهره حاکم شده بود. در اسنای این مدت احوالات بابا زمان را از نزدیک زیر نظر گرفتم. صرفاً به دلیل کنجکاوی این کار را نکردم. حس می کردم ای که پیک با ورده به من ربط دارد. اما درست نمیفهمیدم چه چجور ربطی. شبها تسبیح میانداختم و نود اسم از اسماع الحسنا را ذکر می تا راه را نشانم دهد. هر بار یکی از اسماع الهی بیشتر توجه را جلب میکرد. در روزهای بعدی در حالی که همه ساکنان درگاه درباره نامه نام حرف میزدند، من اوقاتم را تک و تنها در باغچه به تماشای مادر طبیعت گذراندم که لحافی از برف روی خودش کشیده بود. سرانجام یک روز صبح صدای نواخته شدن زنگ مسیح مطبخ را شنیدیم. همگی به مجلس دعوت می شدیم. به اتاق که رسیدم همه درویش‌ها را چه قدیمی و چه جدید دیدم که گوش تا گوش نشستند، مرشد درست در وسط دایره نشسته بود لبهایش را به هم فشار میداد و غرق در فکر به دستهایش نگاه میکرد بعد از اینکه همه جا به جا شدند بابا زمان سرش را بلند کرد و گفت کنجکاوید بدانید چرا اینجا جمعتان کردم همانطور که احتمالاً خودتان حدث میزنید با پیچی که به اینجا آمد ربط دارد. نپرسید فرستنده نام چه کسی بوده. همین بس باشد که بدانید توجه هم را به مسئله مهم جلب کرد. بابا زمان مدتی سکوت کرد. از پنجره بیرون را نگاه کرد. خسته به نظر میرسید. تنش رنجور بود در این چند روز لاغرتر شده بود حتی انگار پیرتر هم شده بود اما وقتی صحبتش را پی گرفت نوعی اراده در صدایش موج میزد. در شهری نه چندان دور یک علامه دهر زندگی میکند. در کلام استاد در تقوا و عبادت کامل در علم و معرفت ماهر است هزاران نفر دوستش دارند و احترامش می‌گذارند مشتاقان وعظ و خطابش بسیارند اما چون در عشق الهی فنا نشده از زن منیت کاملا خلاصی نیافته به دلایلی که ما در نمیابیم باید یکی از زاویه ما برود و رفیق و همراز او شود زیرا در این کار فایده بسیار است با دقت گوش کردم نفسم را حبس کردم آنقدر هیجان زده شده بودم که قلبم در سینه قرار نمی گرفت یکی دیگر از قواعد چهلگانه از ذهنم گذشت قاعده هفتم در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط که صدای خود را بشنوی نمی توانی حقیقت را کشف کنی فقط در آینه انسانی دیگر است که می توانی خودت را کاملا ببینی بابا زمان صحبتهایش را ادامه داد این سفر معنوی است. شما را اینجا گرد آوردم تا شاید داوطلبی از میانتان پیدا شود. می توانستم یکی را برای این کار تعیین کنم. اما این کاری نیست که بتوان مثل وظیفه انجام داد. فقط برای عشق و با عشق می توان انجامش داد. طلبی جوان اجازه خواست و پرسید: استاد عالمی که حرفش را میزنی چه کسی است نامش را فقط میتوانم به کسی بگویم که داوطلبه رفتن شده چند درویش تا این حرف را شنیدند با حیجان و بیسبرانه دست بلند کردند در مجموع نه نفر داوطلب شده بودند من هم که دست بلند کردم شدیم ده نفر بابا زمان اشاره کرد که دستهایمان را پایین بیاوریم بعد با آرامش افزود، پیش از تصمیم گرفتن باید یک چیز دیگر را هم بدانید و آنگاه بود که گفت این سیاحت پر از سختی‌ها و مشقات و مخاطرات است و حتی تضمینی برای بازگشت وجود ندارد فلفور همه دستها پایین آمد جز دست من. بابا زمان سرش را به طرف من گرفت و توی چشمهایم نگاه کرد. آنگاه که نگاه های من تلاقی کرد فهمیدم. از اول میدانست که تنها داوطلب من خواهم بود. زیر لب زمزمه کرد شمس تبریزی. انگار اسمم بر زبانش سنگینی می کرد. گفت در طلبت استواری، پیداست. پایداریت شایان تقدیر است. اما تو عضو این خانقا محسوب نمیشوی. مهمانی. پرسیدم چه فرقی می کند استاد؟ چرا باید مشکل ساز باشد؟ پیرمان مدتی طولانی هیچ نگفت. بعد ناگهان بلند شد و در حالی که با دست اشاره می کرد همه از اتاق بیرون بروند گفت فعلا این مسئله مسکوت بماند. نیازی به عجله کردن نیست. بهار که شد دوباره صحبت می کنیم. دلم گرفت. از درون اسیان کردم. بابا زمان با آن که می دانست برای پیدا کردن آینه روحم به بغداد آمدهام، چرا از تجلی سرنوشتم مرا محروم می‌کرد پیر من چرا همکنون به نیفتم چرا باید صبر کنم خواهش می‌کنم بگویید در کدام شهر است کیست این عالم بگویید تا هرچه زودتر بروم اما مرشد با لحنی قاطع که کمتر در او سراغ داشتیم موضوع را فیصله داد. چرا بحث میکنید صحبت تمام شده است. چه زمستان سرد و طولانی شد؟ باخچه ها از سرما قندیل بست. در سماه بعدی با هیچ کس حرف نزدم. هر روز به امید دیدن ای بر درختی مدتها در برف راه می رفتم. از بس زمستان سخت بود، بهار هم برای آمدن عجله نمی کرد. شاید کسانی که مرا می دیدند، با خود می گفتند ناامید شدم. اما در درونم مدام امید و احساس دین بود. چون قاعده دیگر را همیشه به یاد داشتم قاعده هشتم هیچگاه نومید مشو اگر همه درها هم به بسته شوند سرانجام او کور راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به باز می کند. حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشید بدان که در پس گزرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد. شکر کن. پس از رسیدن به خاستت شکر کردن آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خاستش محقق نشده شکر گوید. سرانجام یک روز صبح دیدم صورتی چشم نواز، سر از میان برف نرگس برفی زریف و لطی مانند شعر دلم از الهام و خوشبختی سرشار شد همانطور که با سرعت به خانقاه برمیگشتم در راه به شاگرد موقرمز برخوردم برای شادمانه دست تکان دادم جوان بیچاره از بس در چند ماه گذشته مرا ساکت و اخمو دیده بود، دهانش از تعجب باز ماند. صدایش کردم و گفتم، بخند پسر، سوز سرما افتاده، بهار دارد از راه میرسد، مگر نمی بینی؟ از آن روز به بعد طبیعت به سرعت دگرگون شد، برفهای باقی مانده آب شد، درختها جوانه زد، پرنده های مهاجر باز گشتند و بلبلها بر سر شاخه ها زیباترین نقمه هایشان را خواندند. اطرری دلانگیز همه جا را فرا گرفت. و یک روز صبح باز زنگ مسی را نواختند. این بار من پیش از همه به میدان رسیدم. باز همگی در اطراف پیرمان حلقه زدیم. بابا زمان درباره صحبت کرد که در آن شهر نچنددان دور زندگی می کنند و باز پرسید: « در این مجلس کسی هست که مایل باشد در قلب او را بکشاید این را هم افزود که این راه ممکن است راهی بی بازگشت باشد. باز هم فقط من داوطلب شدم گفت: پس تنها شمس تبریزی است آماده این سیاحت میفهمم اما پیش از تصمیم گرفتن میخواهم منتظر فرارسیدن پاییز شوم از حیرت ماتم برد پس از سه ماه تأخیر درست هنگامی که آماده سفر شدهام مرشد پیر میخواهد شش ماه دیگر منتظر بمانم گمان کردم قلبم از سینه بیرون می‌زند با اصرار سعی کردم نام آن عالم را از زیر زبان بابا زمان بکشم اما بی فایده بود بار دیگر بی آنکه به صورتم نگاه کند بلند شد و موضوع را فیصله داد اما میدانستم که این بار انتظار کشیدن آسانتر خواهد بود برای رسیدن بهار زمستان را تحمل کرده بودم. از بهار تا پاییز هم صبر می کردم. قم نبود. اینکه بابا زمان دست رد بر سینه ام زده بود، به جای خاموش کردن آتش رو هم شعله ور کرده بود. قاعده نهم. صبر کردن. به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست به معنای آینده نگر بودن است صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می کشند و, حضم می کنند و می میکنند و میدانند زمان لازم است تا حلال ماه به بدر کامل بدل شود سرانجام صبح روزی پاییزی زنگ مسی را برای سومین بار نواختند این بار بی دستپاچگی بی آنکه پیشاپیش بقیه باشم آرام و با اعتماد به نفس به میدان رفتم. مطمئن بودم که صبر سمرش را خواهد داد و کارهایم روبراه خواهد شد. مرشدمان پژمردهتر پجمرده تر و رنجورتر به نظر می رسید. انگار که در وجودش قطرهی قوت هم نمانده بود. پس از حرفهایی که دو دفعه قبلی هم زده بود وقتی دید باز فقط من دست بلند کرده نه رویش را برگرداند، نه موضوع صحبت را عوض کرد، فقط سرش را تکان داد. ای والله شمس، می فهمم که کسی که قرار است به راه بیفتد، توی، شکی در این نماند. فردا سپیددم از خانقاهمان جدا می شوید. رفتم دست مرشد را بوسیدم. مقرر بود سرانجام رفیق همرازی را که در جستجویش بودم پیدا کنم. بر فصل دیگری از زندگیم نقطه پایان نهم و احتمالا آخرین موسم طولانی زندگیم در این دنیا را شروع کنم. بابا زمان با چشمانی پر از شفقت و نگرانی، درست مثل پدری که پسرش را به جنگ میفرستد با اندوه آمیخته به قرور به صورتم نگاه کرد نامه سربه مهر را از جبهش آورد و به من داد بعد از میدان بیرون رفت همه درویشها یکی یکی از پی او رفتند در میدان تنها که ماندم موم مهر را شکستم در نامه با خطی خوش دو خبر ارزشمند نوشته شده بود. نام شهری که باید می رفتم و نام شخصی که باید می یافتم. معلومم شد که باید به قونیه بروم و عالمی به نام مولانا جلال الدین را آنجا پیدا کنم. این نام را پیش از این اصلا نشنیده بودم. ممکن بود شخصیتی مشهور باشد، اما در نظر من تماما راست بود. نامش را بارها و بارها تکرار کردم، تا اینکه مانند آب، مانند نان، مانند شیر، مانند اصل، مانند حق یاهو با زبانم دوست شد.